بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيويكم من درس أساس درس يوسف عليه الصلاة والسلام أي أشتاد السهر فرمدي الله جل شأنه قال بل سولت لكم أنفسكم أمر بصبر جميل عسى الله أن يأتين بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم كان نقطة قفتين فقط از باب تکمیل بحث قبلی یه قسمت آخر آیه به اعتراف خود یعقوب به علم ناقصش به اینکه الله که از همه چیز با خبره و میدونه ان هو العلیم والحکیم هو العلیم الله حس که از همه چیز آگاهه و میدونه و الله که کارش بدون حکمت نیست حکیمه در کارش کارهای الله محکمه این حادثه‌ای که پیش اومده این مشکلاتی که پیش اومده الله درش حکمتی داره پیامبر هر پیامبری از پیامبران الهی انسانهایی بودن مثل ما فقط تفاوتشون در ارتباطشون با الله در قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فرق مزیتشون در وحي پیغمبران بشرن انسانن مثل ما اجتهاد میکنن میخورن میاشمن میرن میاین میمیرن انك ميت وانهم ميتون تميري مي خطاب الله برسول الله صلى الله عليه وسلم تو اینکه هیچ کسی مثل الله نباشه در صفاتش در کمالش در تسبیحش منزه بودنش از هر منعیب و, و نقصی بالاخره اینا اون خالقه اگر بنده می‌میرد الله حی و قیوم است اگر بنده می‌خوابد الله لا تأخذه سنه ولا نوم چورتیم می‌زنه و نه هم خسته میشه و نه می‌خوابه الله صفاتش کماله برای اینکه مردم این قضیه رو پی ببرن الله درس‌ها رو میگذارد در قرآنش تا قلوب نکنن در مخلوقات با اون صفات کمالی که داشتن در اون خوبی هایی که داشتن در اون معجزاتی که داشتن قلوب نکنن الله داره یاد میکنه تا اینجا یه قصه در بحث یوسف ظالم بودن برادران یوسف ولی در بحث برادر یوسف بنیامی مقصر نبودن هرچند که یعقوب علیه السلام داره اونها رو متهم میکنه و میگه قال بل سولت لكم انفسكم اما این کاری که خودتون کردید یک دسیسه توطئه ای که خودتون کردید میخوای خودتون تبرئه بکنید باور نداره اونها رو هرچند که الله داره تصریح میکنه میگه که جریان اینطوری بوده یوسف گذاشته اونجام در آذوقه بنیامین و برادر یوسف اینجا هیچ کاری بودن مثلا کاری نکردن از ام رفتن که تو چوغش بندازن یا مثلا بفروشن. یا مثلا خودشون بیان توی آذوقهش اون جام رو بذارن الله میگه یعنی برادران یوسف این بار اون بار دروغ گفتم ولی این بار راست میگن ولی با این وجود یعقوب علیه باور نمیکنه خب الله میخواد بگه اینا بشرا نمیدونن از علم غیب اگر میدونست اونارو متهم نمیکرد نمیگفت شما دروغ میگید درن راست میگم میگه نه دروغ میگید خب این ظلم این اجتهاد اشتباس شخص داره راست میگه تو بهش نه تو دروغ میگی چون تو رو هستی. چون دروغگو هستی دروغ میگی همیشه دیگه فعالت شده دروغ قرائن بالا ادلهات بر این میده که اینا دروغ بگن و بر اساس اون قرائن داره اجتهاد میکنه مقام اجتهاده با توجه به اون علمی که داشته اینجا اجتهاد کرده به عنوان یک قاضی ما قبلا هم یاد کردیم گفتیم قاضی یعنی که اهلیت اجتهاد رو داره و درست اجتهاد بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند دو تا داره اگر اشتباه بکنه اون قاضی که اهلیت اجتهاد رو داره یک اجر و پاداشش داره در مقابل اجتهادش هر اشتباه بکنه و یک قاضی دیگر بدون علم بدون درک بدون درایت به قرآن و سنتی به کلام الهی حکم میکنه این گناهکاره این گناهکاره مثل پزشکی که جراح چشم بره قلب عمل بکنه جنایته جرمه قتل به حساب میاد کارش نیست من تطبعه فهوالله بخواد این کارو بکنه زامنه بدون تخصص بخواد وارد بشه هیچ قانون این در اون از اون پزشک نمیگذاره اگر بخواد اینچین این کاری بخواد بکنه. الا که واسه اون خاص باشه ضرورتی باشه هیچ کس نباشه خوشوندن فقط تنهایی باشن یه مشکلی پیش بیاد حالا اون مسئله شاید مثلا یک عذری باشه برای اون پزشکی کار دینم هم همینطوره شخص اجازه نداره بدون درایت به ادله شرعی ادله الهی وحی الهی اظهار نظر بکنه در مورد دین اجازه نداره شرع دایره رو تنگ کرده توری نیست که ما هر کاری دلمون خواست انجام بدیم و شرعی بسازین املهم شرکا شرعو لهم من الدین ما لم یاذن به الله شریکانی دارن براشون شعر بکنن دینی بیارن دایره تنگه الله مشخص میکنه یه سری چیزا به طور عموم رها بکنه یه سری چیزا به طور خصوص رها بکنه چیزا عام گذاشته این ذکر رو بگو این نماز رو بخون ما خیلی از اشتباهات انجام میدیم به اثر اشتباه ما پنجشنبه رو خاص قرار میدیم برای صدقه دادن جمعه رو خاص قرار میدیم برای زیارت قبرستون عید را خاص قرار میدیم زیارت قبرستون طول سال راه کردیم فریضه گذاشتیم روز عید این شرع یا نه آیا این اجازهش داریم یا نه زیارت قبرستون خوبه ولی اینکه به روز خاصی قرارش بدین اینکه صدقه خوبه ولی اینکه به روز پنجم قرارش بدین خوبه این اضافه بر الله اضافه بر دین الهیه الله از مخصوص زور القبور فإنه تذكركم الاخره برید قبرستون تا بیاد آخرت بیفتید ولی اینکه من یک روز خاصی قرار بدم صدقه خوبه ولی چرا به جنبه اگر من از باب تعبد که مزیتی داریم پنشن به این کار انجام بدم من مرتکب گناه شدم اجازه ندارم حضرت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموند لا تخف ص ليله الجمعه ولا يوم الجمعه بالصيام خاص قرار ندید چه جمعه بقیام و نه روز جمعه بروزه خاص قرار ندید اجازه ندارید حالا اون شخصی که همیشه سر کار مشغوله نمیتونه لا تخف يوم الجمعه بالصيام این که شخص طول هفته رو رها بکنه بگه آقا چون فضیلت اومده درباره جمعه که بهترین روز نزد الله من روز جمعه پس چون روز خوبیه الله این روز از میان روزها بیشتر دوست داره عید مسلمان ها من روز میگیرم یک روز را خاص مثلا جمعه نباشه س شنبه باشه مثلا دوشنبه و پنج شنبه شریعت و مدرسه رسول اساسا دوشنبه و پنج شنبه گرفته یه شخصی بیاد بگه نه من روز تولدم س شنبه است رسولا برای که چون ولادت شده روز دوشنبه دوشنبه روزو میگرفته منم س شنبه به دنیا اومدم س شنبه روزو میگم چی حکمش می بتات اضافه داری میکنی به شریعت دین کامل شده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دین راضی شدم این اسلامی که بر اساس نازل شده بر شما اسلام پس کامل شده نیاز به من شما نداره رسول الله همسر میفرن هیچ کار خوبی نیست مگر به شما گفتم هیچ کار بدی نیست مگر من شما رو گزد کردم اگر خوب بود رسول دریک میکردن علیه الصلاه و سلام. چرا نگفتن که شما پنج شنبه ها صدقه بدید ما در آوردیم ما از خودمون گذاشتیم ما اجتهاد کردیم ما می میکنیم چرا می کنیم در دین الهی هزارو نظر میکنیم اینی که باید انسان چشمش باز باشه به شریعت الهی به دین الهی از خودش چیزی در ما خیلی چیزها داریم از خودمون در تو قبرستان میری مثلا چوب نقل رو برمیدارن یا تو قبر میکرن یا روی قبر درختی و درختچهی می‌کارن از کجا اومد؟ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم گذاشت یک بار این حادثه رخ داد رسول الله صلى الله عليه وسلم از دو از اصحاب رد میشدن مره النبي صلی الله عليه وسلم به فرا فراى انهما یعذبان فقال ما يعذبان من کبیر انه بل انهما له كبير رد میشدن بعد گفتن اين دو نفر عذاب ميكشند فکر نكني براي چيزي بزرگي بل بزرگه كيشون مقاطره ادراري كيشون مقاطره غيبتو نمامين فما احد مكل يي يسلذه ومن بولن او لا يستر من بولن واما الاخر فكان يمشي بالنميه ويفراوي بالغيبه گيدوتا چوب خیسی بيارييت چوب تازه بيارييت رو اين قبر بذارم مادامي چوب خوش من شما دقت طرف رسول صلواتش میگه میخواد صحابه یاد نگیرن نمیخواد که این کار برای همه انجام بشه یک مسئله را داره تو پرانتز براش میذاره میگه به شفاعت من مادامی که این دوتا چوب خیسن تازه عذابشون کم بشه شفاعت من الان اون چیزی که عذاب اینا رو کم میکنه اون درختی که ما کاشتیم یا اون چوبی که تو قبر گذاشتیم چی عذاب عمرده رو کم میکنه هیچی اینجا این صحاب چی عذابشون رو کم کرد شفاعت رسول الله صلی الله به من به چی شفاعت من مادام این وقته مثل ساعت تا ساعت فلانی این دوتا وقت گذاشته درسته به قول خودمون تایمه تایمر گذاشته مادامی که این دوتا تا خیسن به شفاعت من عذابشون کم میشه پس رسول داره شفاعت میکنه در حق اینا نه اینکه وسیله ای گذاشته که اون وسیله سبب کم شدن عذاب چه ربطی داره الا چوب خیس باشه عذاب اونا کم میشه تو رو درخ بکاره شر من کرده قبرستون از اینکه آباد بشه، درختی کاشته بشه، این جای تاسفه قبرستانا دارن توش درخت میکارن، این خلاف شریعت الهی ما از نشستن روی قبر من شدیم، ما از اینکه بشینیم، چنانچه در صحیفه موسی نه نبی صلی الله ان علی القبر، روی قبر چرا رأی چیه؟ تا اینکه خدایی نکرده اون انبار خاکی که روی قبره پایین نره و اون میت و سخونش و اون جسد عمرده آسیب نبینه. شما خودتون بگید اون درختی کاشته میشه ریشه نداره؟ اون ریشه آسیب به اون جسد وارد نمی کنه مؤمن حرمتش در زندگیش و در مردگیش تو زنده حرمت داری تو مردی هم حرمت داری تو درخت بکاری این درخت مزنه که ریشه ها برسه به این اجساد و به این قبر ها خراب بکنه غیر از این که این باغستان و گلستان دیگه نیست که ما بخوام بیاد باغبستان باشیم بریم اونجا برای تفریح و گل و درخت و اینا زور القبور فانه تذکرکم الاخرت برید عبرت بگیرید برید بیاد مرگ باشید برید قبرستون هدف بیاد مرگ بودنه نه هدف نزحت و تفریح و خوشگذرانی و گشت و گزار و این نیست باید انسان ببینه که دلتنگ بشه ببینه که به فکر آخرتش بشه ببینه که به فکر اعمال خودش باشه ببینه که توبه بکنه همونطور که رسول الله ص ص قلب القلب قلب رقیق بکنه دیدن قبرها و دعایی بر اون مرده ها و یاد اون مرده باشه السلام علیکم اهل القبور اهل دیار الله لنا و الله شمربی امور زي مرده سلامتی الله بر شما باد همه این مردگانی که در این قبر سنید. این سنته اینجا هست که ما ما باید جایگاه خود ما رو بدونیم وقتی که یک شخصی اجتهاد میکنه ببینیم که این شخصی که اجتهاد کرده از کجا آورده دلیل شرعی روش داره هر چیزی رو باور نکنیم هر چیزی بخورده نادادن نگیر به سر و چشم اگر قال الله رسوله است الله و پیغمبرش مستند شرعی برش هست و سر و چشم فکر نه میمونه که یک اجتهادی یک اون شخص شاید اجتهادش درست باشه شاید اشتباه باشه بس خیلی مهمه که اون شخصی که اجتهاد میکنه کی باشه چون اگر اهلیت اجتهاد نداشته باشه اجتهادش هم درست باشه گناهکاره من اجتهاد بکنم اهلیت اجتهاد نداشته باشن. هر درست درستم بگم گناهکارم کاری که کار من نیست دارم درش قضاوت میکنم و من مسئولم اتقولون علی الله ما تعلمون چرا گناهه چون تو داری جایگاه تشریعی به خودت میدی جایی که نباید حرف بزنی داری حرف بزنی دین را الله گذاشته شریعت مال الله تو وقتی که بدون علم میای اظهار نظر میکنی به دین میچسبونی انگار که این را الله تشریع کرده الله گفته این جرم این جنایت و من اظلم ممن افترى على الله كذبا این افترا بر الله چون نمیدونی تو هر جا که شاید هم بر قول دو گفته باشه بلکه اینجا تو داری تقوّل میکنی بر الله بر شریعتش از خودت از جیب خودت داری در میاری مسئولی. با انسان مواظب باشه اون حرفی که میزنه و اون کاری که انجام میده ما مسئولیم در مقابل این کار این کاری که ما انجام میدیم چرا انجام میدیم؟ چرا سر قبرسون این کار انجام میدن؟ برو بپرس تحقیق کن الله بیت درد داده فهم داده باید تحقیق بکنیم نه دینمون جوری باشه که کورکورانه هر چیزی بهمون گفتن هر کسی هر بدعتی هر اشتباهی انجام داد ما هم انجام بدیم قل سبیلی الله علی بصیره و بصیرت داشته باشیم چشمون باید باز باشه انا و منتبعین من و پیروانم رسول الله صلی الله علیه و سلام. و پیروانش باید دینشون با بینش باشه با آگاهی باشه نه با جهل نه با نادانی با علم دانش خب پس اینجا یعقوب علیه السلام اشتهاد میکنه و اونها رو خطاکار میبینه در صورت که اینجا اونها خطاکار نبودن اشتهادی کرده یه قاضی هست ما متبریر یاد میکنه در تفسیرش میگه که بحث حسمتی که بعضی ها یاد میکنن اشتباه میفهمن که این حسمت در مورد بشر و همچنین پیامبران در همه چیزه اشتباه میگه میگه اگر ما در نظر بگیم خود رسول صلی الله علیہ وسلم اگر اشتباهی اصلاً ازش اشتر نزده باشه هیچ اشتباه, اشتباه وقتایی چرا امام تبری میگم من نمیگم میگه چرا الله جل شانهو در قرآن بهش میگه لیغفر لک الله ما تقدم من دن بکه و ما تأخر تا اینکه الله گناهان رو ببخشه میگه تهجد بخون فلان بکن تا اینکه گناهان رو الله ببخشه اون چیزی که گذشته خب حالا اون قبل از بعثت بوده گذشته متقدم بوده گذشته و ما تاخره یعنی اون چیزی که قاهاد و مات خب بعثت اله پیامبره اون چیزی که انجام دادی و اون چیزی که انجام خواهی داد این احتمال هست یعنی الله داره میگه این احتمال هست که خطای روح بده ولی ما خطاهای تو رو بخشیدیم بیغفر لك الله یعنی کہ الله تبارک و تعالی بخشید بیامرزت امام تبری رحمت الله چی میگه میگه اگر خطایی از پیامبر رخ نمیداد چرا الله بخشیده اونها رو بخشش وقتی واقع میشه که خطا رخ بده نمیشه بدون خطا بخشش رخ بده بله این خطا محاله که در جانب وحی رخ بده در جانب دین الهی رخ بده رخ نمیده ولی در جانب دنیاوی شاید اجتهاد بکنن اشتباه بره مثل قضیه که رسول صلی الله علیه وسلم در بحث ایوار کردن یا لقاح کردن نخل اجتهاد کردن مدن صحابه دیدن که رسول صحابه دید که اونها دارن لقاح میکنن از نر بر میدارن اون سمرش روی ماده میذارن نخل ماده و نر داره ما اهل تخصص میدونن خب رسول صحابه تعجب کرد که خب هیچ درختی نیاز نداره این درخت هم خب شاد نیاز نداشته باشه خب چرا این کارو میکنید؟ نکنید اگر الله بخواد اینا هم لقاح میشن مثل بقیه درختان صحابه این کار نکردن سمر کم شد اومدن هزباب گلاهی و شکایت نزد رسول الله صلی اللہ علیہ نداد که بدتر شد نه بهتر جوابشو چی دادن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال انتم اعلموا با امور دنیا کن شما به دنیاتون آگاhte میگمن من اومدم دنیا بهتون یاد بدم من که نمیامدم بیل و کلنگ و اینا دستتون بدم شما باید خودتون بدونی که آقا چرا لقاح میکنید من که نمیامدم که این کارا بهتون یاد بدم شما این... شما باید بدونی که چرا این کارا دارید میکنید من اومدم در قالب دین براتون اتمام حجت بکنم بیام دینتون بهتون میام بزنم نه دنیاتون پس اشتباه اشتهاد شاید رخ بده خصوصا در مسئله دنیا خاطر هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی اومد برای قضاوتی نزد من شاید با اون ادله تراشی و بهانه تراشی یک کسی زبون دار باشه. حجتش قوی باشه من بهش حق بدم به خاطر که زبون داره و به خاطر اینکه ادله برای خودش اوورده بر حسب ظاهر چون ما مکلفین به ظاهر مثل اینجا یعقوب علیه السلام که به ظاهر داره حکم میکنه شاید حق به اون بدم ولی اون کسی که بی زبانه از خودش نمیتونه دفاع بکنه شاید اینجا مظلوم واقع بشه بدانت اون ظالم که مستند تراشی داره میکنه برهان تراشی داره می‌کنه برای خودش ادله و مدارک آورده اگر براش یه تتی از زمینی مثلا مخاصمه داشتن براش بریدم براش دادم بداند که قطعی از جهنم بدادم قطعی از جهنم بوده که اینجا نصیب شده پس مسئله سخته قضاوت کردن کار راحتی نیست سخته و شاید یک شخص اشتباه بکنه خب پس اینجا یعقوب علیه السلام اشتهاد میکنه در مورد فرزندانش الله جریان قشنگ داره مفصل میگه و واضحه که اینجا اینا دروغ نمیگن ولی خب با این وجود یعقوب میگه نه شما دروغ میگید هرچند که ما گفتیم یاز میگیم به یعقوب علیه السلام و در مقابلش هم صبر رو پیش میگیرن اون جمیل اون صبر زیبایی که درش داد و بیداد و فریاد و پاره کردن گریبان رو نمیدارم اینا نباشه نوح خونی نباشه چون بعضی چیزا دیگه شرع ما دیگه مشخص کرده این قالب صبر و عدم صبر رو مشخص کرده صبر جمیله الله هم تاکید داره میکنه که این یعقوب صبر زیبا رو انتخاب کرده این صبر غیر زیبا هم شعر مشخص کرده که چیه رسول الله میگه شق کل جو پیرانو شخص باره بکنه از سرش بزنه نه از جاهلیته اینجوری چیزو بران نداشتن یا نوحه بخونن رسول الله صلی الله علیه و آله میگه دو صدا ملعون یکی صد نوحه خونه آهنگ ملعون صدای آهنگ ملعون وای بر مسلمانی که از عمد آهنگ گوش بده وای ملعون این صدا این که آدم به گوشش بخوره یه چیز استماعی رخ بده ولی که از عمد تو ماشینش تو خونهش بذاره جلو زن بچهش حرامه عسل الله یعطی یعنی به هم جمعی شهد الله همشون رو بیاری داشته حصا برای تاکین میاد مطمئنه که اینا برخواهم گرش یوسف برخواهم چون قبلا اون خوابش رو یوسف تعریف کرده بود میدونه و بعدم الان میاد که خدا یعقوب مقرار میکنه این قضیه که چرا میدونه از کجا میدونه و توله عنهم و قالا یا اسف و توله میکنه میره یک گشه رو انتخاب میکنم میره از کنار این ها بچه الان کی نیست برادر یوسف بنیامین تاسف بر کی میخوره بر یوسف میگن زخمش تازه شد مصیبت او را به مصیبت دیگر دوچار کرد و بیاد مصیبت دیگر انداخت الان دوتا تا مصیبت و بیض دف اونجا هست که چشمش سفید شد چشمش سفید شد کوری نیستا نابینایی نیست, نیست که اصلا کل چشمش از دست بده نه از بس که گریه کرد گریه کردن عیب نیست کاری کردن زاری نیست کاری کردن نوحقونی نیست نیس. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد ششفوت میشن ابراهیم روی پاشن اشکی میریزه صحابه تعجوه میکنه یا رسول الله تو هم کاری میکنی قال این العین لا يحزن. عين. ان و این القلب لایحزن عین چشم قاری میکنه قلب اندوگی میشه. بشران که ملاکه که نیسه این بشریت او ناسه جنسشون انسانیه، انسانه، رحم و عطوفته، اینها در الله در قلبشون گذاشته. اینجا هم یحقوبه، دوتا از هاش ازش میگیرن، نه اینکه بمیرن الله بگیره، فرقه اگر میمردن، تسلیم بود، شکی نبود در اینکه تسلیم امر الهی میشد، امانت الهی مال خودش گرفته، محال بود که ناراحت بشه، یعنی اینطور که اینجا ناراحت شده فرق میکنه با اون، قضیه که بحث مردن باشه اینجا ظلمی داره واقع میشه بر بچه هاش از بچه های خودش چوب بچه هاش رو داره میخوره سختیه یعقوب در اینه این غمش این اندوهش این تأسف و افسوسش بر اینه که برادران مقصرن از چش مونا داره میبینه دلتنگی اینه بعدم شرع ما قبل ماست دین یعقوب علیه سلام دین ابراهیم بوده ما وقتی کسی دست را ا أز ما خواستك أنجا استرجاع كنيم يعني بقيم إنا لله وإنا إليه راجعون فزيلت داره سبب داره بأله استرجاع تر قرآن بما ياد داده در سنتم فزيلت برامون ياد شده الله جل شانهو رملاوكاش ميگه خذتم بولد عبد مؤمن بچه يوم بنده مؤمنم رو گرفتی خذتم ثمرة فؤاد من جگال بوشه شو گرفتی قالوا نعم قال فماذا قال بچه شو گرفتی چی گفت قال استرجع وحمد قلت إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله قال ابنه لعبدي بيتم في الجنة وسموه بيت الحمد الله أكبر برايهم بندام خانه منزلي دربهش بسازيت واسمش ربزانيت خانه حمد افتخار الله بإيم بنداش إن خانه براي هرکس نيست اون کسیست که در مقابل مصیبت بگه انا لله و انا الی راجع مال خود الله هر وقت بخ که بخواهد مال خودش رو بر میداره چنانچه اون زن صحابی که بارها تکرار کردم گفت بچهش فوت میشه و بعد شوهرش میاد از سفر و بعد لهافی میگشی روی بچهشو به شوهرش نمیگه صبح که بیدار میشه میگه خب بچه چرا بیدار نشد خب بچه مرده ناراحت میشه میگه فلانی اگر هم همون امانتی میورد الان دوباره میومد امانتشو پس میگرفت تو چی میکردیم بی نادی یا نه گفت که ولی میداد گفت خب اینم الله مال خودش داده بهت مال خودش برداشت چی میخوای بگین فصابر جنید و با انسان باید صبور بکنه این مصیبت الله داره به همون یاد میده چنانچه چه یعقوب علیه السلام اینجا میگه فصابر جنید هم باید صبور باشید به خاطر همین از سنت که اگر کسی مصیبت زده شد، اگر کسی الله بچاش مادرش خواهرش برادرش ازش گرفت ما تسلیتش بگیم با دعوت به صبرش اصبر واحتسب چون که اساسا نمیگه فلتصبر وتحتسب ان لله ما اخذ و له ما اعطى مال الله میده میگیره مال خودشه صبر کنید تحمل کنید مال الله خودشه الله میده مال خودشم پس میگیره ما بنده ایم الله و ربیه و مرزی این تسلیت دعای خیر کردن به اون مردش الله قبرش رو نروانی بکنه الله جنت فردوس نصیبش بکنه این دعای تسلیت نه اینکه مثلا بری طرف عظم الله اجرک هرچ در سنت نمیماده برره اج تا بالا ببره خب تسلیاتی بگو به اون مردش این تسلیاتش اون دلداریش نیست دلداریش وقتی که تو از خودت خیرخواهی به اون مردش انجام بدی الان اون داغدیده مردشه نه دادیده خودش خودش که زنده است هنوز فرصت داره نمازی روزه انجام بده و بخونه و وگیره روزه و لیکن اون مردده است که این فرصت رو ازش گرفته شده تو باید به فکر اون مردش باشی الله مردت را مرزه. رحمتش بکنه این تسلیت و اون کسی که کهان موصیبت زده شده به فکر اون الان کلا صدقه بده. الان نمیدونم بچاش صدقه جاریه بزاره مسجد چیزی چون دیگه الان فرصت دیگه نداره عمل خیری انجام بده چرا ما بعد از پس از مرگ پدر و فکر بفکریم که صدقه بدیم بچاشون یا با بس سران بسازیم به خاطر چی به خاطر که میدیم دیگه این هم فرصت عملو ندارم <متحن> و قالا یا اسف علی یوسف و بیا ضد هم من الحزن از اندوه فهوا کذیم فهوا کذیم دو توجه تفسیریتش تو هست یکی این که این کذب یا غم اندوه یعقوب باشه نهایت دلتنگی و اندوه خیلی دلتنگ شد وجه تفسیری دیگر که این دلتنگی همراه ناراحتیه خب حزن اومد، اندوه اومد، غم اومد. و مات اندوه مات غم و مات و بیاضت عیناهو من الحزن از اندوه چشاش سفید شد نگه کور شده چشاش سفید شد از گری کردن دادم گری زیاد بکنه چشم ضعیف چشم ضعیف شد نگه کور شد بعضیا میگن کور شده نه این دلات با کوری نمیده اینجا کوری پیش نیومده از گری زیادی دیگه نمیدید و هو کظیم کزمی داشته در دل خودش نسبت به اون تأسف بر گمشدن یوسف و یا نیمدن یوسف و بنیامین به سبب برادرانش اونها مقصر بودن اونها گمشون کردن یا اونها بالاخره آوارشون کرده که الان دیگه نیستن کنار پدرشون الان در دل خودش نسبت به فرزندانش ناراحته شدت دلتنگیش از ناراحتی نسبت به کار و اون نیرنگ برادران یوسف این چیزی که ما اشاره کردیم ناراحتی همراه دلتنگی جمع شده برای یعقوب علیه السلام قالو تالله بازم قسم الان برای سومی یا چهارمین بار داریم بازم دینادر قسم یاد میکنه الله هم داره بهمون یاد میده قسم میخوای بخوری حق نداري قسم بغير از الله بخوري الله خودش قسم ميخوره والشمس والقمر و القمر ولی ما بندگان اجازه نداری رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من حلفا فليحلف بالله كسي میخواد قسم بخوره فقط با الله قسم بخوره يا عمر بن خطاب قسم میواد کرد بغير الله میگه لا تحلفوا با ابائكم بپدرانتون قسم نخوري به جانم به جان پدرم ده جان فرزندم شركه نداری شرکی در اصل ولی الله ذات خاصه فقط قسم به خودش لا تحلفوا قسم نخورید با ابائكم قسم نخوري من كان حالفا فلیحلف بالله کسی میخواد قسم بخوره فقط با الله قسم یاد بکنه والله بالله و الله اما اینکه تو قسم بخوری به فرزندت و به جانت و نو درستی از انواع شرک که شرع را نحی کرده از اون را گوشزت کرده از اسلام نیست که انچنین کاری انجام بدیم. اسلامی میگه که تو قسم میخوای بخوری فقط اجازه داری قسم با الله بخوری قسم میخواد قسم یاد بکنه فقط با الله قالو تالله اینجا هم اینا قسم با الله یاد میکنن تفت و تذکر و یوسف هنوز هم بیاد یوسفی حتی تکون حراضن او تکون من الهالکی الان بین سالی و ضعف رسیدی و نزیکی که بمیری و حلاک بشی قد ضعیف شدی سنی این هم ازت رفته با این وجود بیاد یوسفی اینا دارن پدرش رو به جایی که دلداری بدن سرزنش میکنن به جایی که پدرشونو دلداری بدن سرزنش میکنن نکوهش میکنن زخ بدتر میشه یا بهتر اتبیات سخن گفتن بعضی ها بلد نیستن الله میخواد بگه تو در کلامی سخنی که میگی محاسبه میشی یا حرف درست بزن بفهم چی داری میگی این نمک روی زخم میپاشی یا دواست اومده ابرو رو درست بکنه چه رو کداری کور میکنه بدونه که چطور حرف بزنه ادبیات و سخنگویی رو باید یاد بگیره و بچه هم باید یاد بگیرن و بفهمند که چی باید بگن و اینم وقتی اصلاح میشه که ما در جنبیا وقتی که ما معلم خوبی داشته باشیم وقتی که ما از سیرت رسول الله علیه و آله بخونیم در نوع تعاملش گفته گوش تا وقتی که نخونیم این ادبیات رو یاد نمیگیریم همونطور که اینا حسادت چش به شکر کرده بود نمی از پدرشون استفاده بکنن اینجوری محروم موندن گناه خودشونه. الله میخواهد بهمون یاد بده فلما مذاق و الله فلما زیغ از ولی خود بندگاه پیش میاد پدرمون همش به یوسف توجه میکنه دیگه چشش دیگه از خیر و خوبی پدرشون بستن پدر ما هم هست اشکال نداره حالا پدرمون اونو بیشتر دوست داره ما هم از پدرمون استفاده ببریم نه در دلشون حسادت تبدیل شده به یک بغزی که سبب شده از علم اون نبوت محروم بشن فلما زاغو واختی که زیغ در اونها پیش اومد انحراف پیش اومد الله هم عقوبت بدگانشون رو میکنه اسباب هدایت از سنن میبنده وقتی کسی خودش نمیخواد هدایت بشه الله اسما به هدایت اندیشه میبنده دیگه اینها نمیکنه حسادتشون منجر شده اینطوری بی ادب بشن اینطوری گمراه بشن حسادته اصلا نتیجه بدی داره سختی داره چون از فلان شیخ بدش میاد خلاص اینو حق نداری بشنوی الله هیچکسی هم نیست یا از این امام مسجد چون دوستش نداره بچه‌اشمات محروم بمونه هیچ یاد نگیره اون مشکل خودته و باید به اخر عاقبت خودت و بچه‌هات فکر بزنید که چی میشه وقتی که تو جلوه نشر علم خیر را بگیری مثل اون کسانی که به خودشون اجازه میدن جلوه دعوت رو بگیرن دودش کی میگیره وقتی که ما جلوه یک تعلیمی یک دینی و دینداری بخوام بگیریم یک کسی بیاد قرآن الله وحی الهی رو به مردم بازگو بکنه وقتی که جلوه میخوام بگیریم چی میشه لازمش چیه اسمش فساد نمونش فساد از کجا به وجود اومد فساد خودشون به وجود آوردن با اون حسادت که تبدیل شده به بغض خودشون محروم موندن وقتی که ما هم تا کار باشیم ما هم مانع خیر بشیم دودش آخرت چشم خودمون و فرزندانمون اینا است که ما باید متذکر باشیم نزاریم کسی جلو دین و دینداریمون و آموزش دینیمون بگیره چون دین نباشه ما هم اگر برادران یوسف که پدرشون پیغمبر بود از پیغمبران الهی علیه الصلاه و السلام یعقوب این پیغمبر شکیبا این سبور که الله اینجوری این مدح ستایشش میکنه با این وجود این بچه‌ها محروم نه یک بچه ده تا بچه محروم موندن از دین و اخلاقش، اسباب اولا ما هستیم که محروم میشیم وقتی که موقعی نشون میدیم کینه و بغضی نسبت به کسی در دل میگیریم یا کسی در ما تأثیر میذاره فلان شیخ گوش ندید، این شیخ تئوری تندرو و فلانه این اینه اینه درس باید میگیریم دویدش تو چشم جامعه میره، بچه های بچهای خودمون میره، بعد آخر قبته بعدی خواهد داشت جلوه دین گرفتن، جلوه نور رو گرفتن، آقابه آخر قبته بعدی خواهد داشت، باید جلوه الله ما حساب عصبانی در مقابل دین سیفیزی دین الله باید نش بشه گفته بشه و ما هم وظیفهمونه. الا چه کسی خوشش بیاد چه کسی خوشش نیاد ما وظیفمون رو ادا میکنیم میگیم به مردم کسی بخواد مانع خیر بشه مسئول جلوی الله غیر از این که بداند چنان بلا و مصیبتی که بر سر برادران یوسف اومد بداند که در این دنیا الله رهاش نمیکنه در این دنیا هم الله داغش رو به دستش میذاره صلی الله محمد و علی محمد